بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب خير الجيران حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبر ناشر بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال خير الاصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره 54 امين باب از ابواب كتاب ادام خودمان بخاري باب خير بهترین حديث از حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما از رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يفرمايان خير الأصحاب عند الله سبحانه وتعالى قد قلت لكم خير الأصحاب صحبت رفاقت صحبت مصاحبته مصاحبت و رفاقت بهترين كساني كه بهترين هم صحبتي رو دارن بهترين رفاقت رو دارن محبوبترين و بهترين نزال الله هر چقد رفاقتت بهتر خوبتر شد نز الله تو محبوبتاری و خوبتان دیگه مابقیش دیگه خودتون میتونید بفهمید که رسول الله صلی الله علیه و سلام مقصد هست حسن تعامل یاری یاری کمک کردن دست به کمکش بودن حالا چه در ازدواجش چه در کفن و دفنشه چه در عیادت مریضش چه در تعزیه و تسلیتش خیر الاصحاب بهترین باش تو الله برات بهترین باشه تو نز الله بهترین باش اینجا گفتیم راه رسیدن چی رو بهمون یاد میده رسول الله صلی علیه و رسیدن به درجه احسان راه رسیدن به درجه احسان و منهم سابقون بالخيرات اینو در نظر شونید بدید چطور به این منزلت و این جایگاه رسیدید به درجه محسنین برسی محسنینی که این لقب را الله به بی پیامبرانش میده همچون یوسف و ابراهیم و غیر از انبیاء صدیقینی که در قرآن از اونها یاد کرده درجه احسان مقام ولایته که هر کسی نمیتونه بهش دست بیابه پس این حدیث تشویقیه برای من و شما که یار خودمون را در بهش کی انتخاب بکنیم میخوایم همراه رسول الله صلی اللہ علیه و سلم همجوار و رسول الله صلی اللہ علیه و سلم باشیم یا اون فاسق خمار اهل غیبت نمام دروغگوی خ هم صحبت کی باشی رفیق کی باشی همدم کی باشی همدمت کیه کسی که همدمش رفيقش صحبت سخنان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا رؤوس روز قيامت با كي حشبشه يدعى كل اناس بإمامهم إمامت كيه رحبرت كيه رحب الراه كي رفيق كي بخواه رفيق كي واشي هم صحبت كي واشي تمعت رو بالا كن بالا كن بزر كن انا از الله بخواه و براي رسيدن با این راه تلاش كن گفتم شاید شما یک زاویه کوچک از این حدیث را شما نگاه بکنید فقط در حق همدیگر این یاری و یاوری و همصحبتی و رفاقت را ببینید زاویه شو یک کم گسترده تر کن حالا میاد گسترده تر کردن دایره صحبت چگونه اصحاب و یاران این دایره رفاقت و صحبت را دیدن و چگونه همدیگر را یاری میکردن برای رسیدن به این مقام با این شرف چون این شرف بزرگیه خیر عند الله یعنی اون بهترین رفیقان نزده الله بهترین شد. کی بهترینه؟ خیر لصاحبه اون کسی که با رفیقش بهترینه. و خیر الجیران عند الله خیر هم لجاره. و نزده الله بهترین ها از همسایگان کیه؟ اونهایی که با همسایگان خودشون بهترینن. اینها تشویقی ترغیبیه برای هم مواسط و دلداری و همدلی و کمک و یاری، كيف نسبة برادار مؤمن كيف نسبة هم سوء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرم ما تحب رجولاني دون فرق <تصفيق> نسنجهم. دجالو دستة شبوش في الله البته. إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. بهترين شو الله هزم دون فرق هم دجالو دستران. أنكسي كمحبتش استبرادارش مشترى إنه تشويخه بر محبت محبت في الله كيارة دستري. رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر السدي قمر من الخطاب. و أصحاب وتابعين وعلمائك راه راه انها بدا والآن انهايك أهل الدينان والراه الرمش رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاب جاران وقرفتان بل حديث بعدين بعدين قال المؤلف رحمه الله باب الجار الصالح حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت قال حدثني خمئيل عن نافع ابن عبد الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادت المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. پنجو پنجو باب از ابو عد مفرد من بخاری باب الجار الصالح حمسی خوب صالح نیک هشتاد فانجمين حديث حديث النفع بن عبد الحارث رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عزة الله صلى الله من سعادة المرء المسلم سعادة خشبختی خشبختی فرد مسلمون المسكن الواسع خونه واسع مزرگ والجار الصالح هم خوب نيك صالح والمركب الهني ومركب سواري خوب انها نعمتها يلاهیان از خشبختی از خوشبختیه یعنی انسان اینها را در دنیا داشته باشه دیگه چی میخواد؟ اینها از خوشیهای دنیاست اینها از خوشیهای دنیاست سوال مسکنی تنگ کوچک ولی اهل آن منزل سعید خوشبخت اهل ایمان اهل تحجر اهل دین آیا الله سعادت را منحصر به خونه بزرگ کرده؟ یعنی لازمه سعادت خونه بزرگه؟ یا میشود سعادت را اگر انسان در یک جای نیافت جاهای دیگر هستن که از اونجا سعادت و خوشی را کسب بکنه؟ آیا سعادت منحصر به مسکن واسه؟ نمیتونه انسان در یک خونه تنگی باشه، کوچکی باشه من بشه؟ بله والله میتونه الله در دلش غنا و قناعت بذاره میتونه حدیث؟ قبلا بیان کردیم که بیاتون هست. من كانتخرات همهه کسی که آخرت هم بشه. جعل الله غنافی قلبه غنا و بینازی او الله در قلبش می نیست اصلا چشمش به دنیا نیست چشمش به خونه نیست چش به ماشین و سواره نیست سعادت درق نمی بینه. یعنی براش مهم نیست. قاره اما کسی که همش دنیاست؟ بله فقط باید خونه بزرگ باشه. باید مسکن بزرگ باشه باید بهترین سواره رو داشته باشه تا راضی باشه نه. این کسی که هم موغمش دنیاست، نکنه دنیا همه، جعل الله الفقر بین عینه الله فقره جلو، بهترین خونه را داره شخص، بهترین خونه و منظر لا طرف داره ولی که احساس فقر میکنه، احساس بدبختی میکنه، احساس خوشی نداره، نیکی نداره. اینها از باب تذکر یاداوریه. اگر این نعمت ها رو داری فکر نکن که تو فقيري نداری. اینها نعمت های الهی زن نعمت مرکب نعمت، همسایه نعممت مس نعممت شزار الله باش در مقابل نعممت های اینا سعادت ها. انسان وقتی قدر این نعمت رو میدونه وقتی که چ از دستش بده. وقتی که این نعمت ازت گرفته باشه همسایه بعد وقتی که الله نصیبت بکنه بعد میدونی طول سگ و ورده دمپایی تو دم در میذاری بقیش رو صبح که بلند میشی پ تو نمار صبح خای بری پات رو بجای تو دمپایی قبل از اون رو چیزی که گذاشتی. میشه نمیشه؟ اول صبح آماده شدی بری مسجد پات که میخوای تو دمپایی بکنی توی اینا هست که انسان باید قدر نعمت را بدونه اینا نعمت هستن همسایت نعمت همسایه خوبه برادر خوبه مرکبی که الله بهت هدات اینا نعمته اینا خوشی هست اینها را تو باید بیاد داشته باشی و در روایت اومده اربعون من السعاده چهار چیز سعادت خوشیه از های الهی که تو باید شو گزارش بشی المرأه الصالح. صالح و المسکن الواسع الصالح و المركب أني غير إذا في بahrain زنة صالحه ومدى زنة صالحه، ودرواتي دقار مدة أربعة من الشقائق بتبختي مندي تشوجيزن الجار السو همسوي باد والمرأة السو والزنباد والمركب السو سواري والمسكن الضيق مسكن التانج ولا در بعض درواته مدة لا ولا طيرة. عدو ولا طيارة لا عدو ولا ولا حديث مود لا ولا كان شؤم في شيء ففي المراه والمركبه ستجزا یاد میشه عدوانيس يعني مريضه خودش منتقل نمیشه تطیور و تشاوم و بدبینی هم نیست یعنی ما چیز نحسی نداریم در خلق الهی الله نحسی را خلق نکرده الا امروز نحسه یا این نحسه و اگر در چیزی باشه در سه چیزه زنه مرکب، منزله در این سه چیزه اگر قراره که شؤم باشه شومی در یک چیزی باشه در این چیزه خب ما لا بینیم ببینیم مشروحات اهل علم کی چگونی حدیث را فهمیدن مثلا خب جای دیگر داریم رسول الله صلی الله علیه و آله میگن فراروا کمن العدو فراروا کمن الاسد اس عدواس مریضی فرار کن همطور که از شیر فرار میکنی چه عدوایی حالا علما گفتن خب بعضی از مریضی هستن که واگیره خب انسان نباید خودش رو در معرض اون مریضی قرار بده خود رسول الله صلی الله علیه و آله کسانی که می اگر مریزی واگیره داشتن دست نمیدادن اسوابه ولی که سری چیزها عدو نیس نیس اینجا هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل اون گفته لا عدوا ولا طیرا عدوی وجود نداره یعنی عدوا نیست و نفی عدوا رو کرده اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم حالا چطور جنب بندین گفتن که لا عدوا نه اینکه که مطلقاً عدوی نیست یعنی مریضی متعدی نمیشه مریضی واگیری نیست بلکه مریضی خودش حقیقتا واگیر نیست الا اینکه الله بخواهد اینم مشاهده یعنی همون مریضی واگیر کسی سرما می‌خوره توی اینجا خودمون یکی سرما خورده شاید یکی مبتلا به اون سرمخوردگی بشه از اینجا. جنب بقیه نشد تو منزل خودتون دیدید مثل کسی سه 4 تا بچه داره یکی از بچه‌هاش سرما می‌خوره تب می‌گیره آنفولانزا می‌گیره ولی بقیه بچه‌ها و خودشون خانومش نمی‌گیرن بعدو کجاست ادوا نیست حالا شایدم انتقال پیدا بکنه اگر انتقال بکنه چیه به مشیت الهیه خب حالا اینجا میگن که بس توصیه شرح اسباب رو بگیره ادوا اگر الله بخواد منتقل میشه نه اینکه مطلقا ادوا نشوده حالا یکی از جمعبندی های علما هست در جمع بین این حادیث حالا مسئله که من میخوام بهش برستم مسئله دیگه است. مسئله طیاره شوم بودن آیا اینجا وقتی که رسول الله صلی علیه و سلم میگه اگر شوم باشه در سه چیزه در زن و در مرکب و در منزل آیا واقعا این شوم و نحسی در زن هست؟ یعنی الله زنی را ذاتا شوم قرار داده یعنی نحس قرار داده خلقت کرده و فریده؟ خیل. فطره الله التي فطر الناس عليها لا تعدي لخلق الا فطره بوكي فطرت منازه الله بدش نه فریده. اون زن خودش بد شده اون زن بد اخلاقه بد دهنه بد زبانه تو نمیتونی تحملش بکنی آزاره اذیت رسول الله صلی الله علیه و میگه سه شخصا که دعاشون استجابت نمیشه یکیشون شخصی که زن بد اخلاق و بد دهن داره و ایشلاقش نمیده خب الان این بد بیاری در خلقت آفرینش اون زن بوده یا اون زن خودش رفتارشو بد کرده و با فعل خودشه که بدسرش شده بدسرش بودی یا شده شده خب این بدبیاری شده نه اینکه این بدبیاری در ذات اون زن باشه اینجا هست برای اینکه تو فکر نکنی بدبیاری وجود داره شومی وجود داره اون زن رو طلاق بده خونته منزلته بهت میگن این خونه نحسه قبل از تو هر کسی تو این خونه زندگی کرده مرده تو هم وقتی که میری تو اون خونه میشینی بچت مریض میشه این میفته این فلان میشه ور میشه این فلان بشی خب نحسی تو اون خونه هست نه الله که خلقتش نحسیس چون اون خونه منزل مسکونه جنیانیان یان یان اونجا مسکون شدن نمیذارن که تو راحت بخوابی نمیخوان تو تو این خونه باشی خب برای فرار از دگر و بتشاؤم و بدبینی چون بد بیاری برای خودت میبینی برو بیرون از این خونه برو جای دیگه بشین ارض الله واسع این فرارت از این منزل از این زن برای چیه؟ برای نفی تیاره، نه برای اثبات تیاره. برای اینکه در دلت بدبینی به الله پیش نیاد. فکر نکنی که الله نحس خلقت میکنه. نه اینکه ذات اون خونه یا اون زن یا اون مرکب نحسه. این ایک راهیه که انسان میتونه از باب علاج و درمان در پی بگیره. خصوصا بحث اعتقاد که نبات خدشه دار بشه. جایی هست که انسان اعتمادش و توکلش رو به الله عز میده. خصوصا وقتی که گذافه گویی میشه در بحث اسباب سرماخوردگی یکی از مریضی های واگیر سرماخوردگیه ولی که این سرماخوردگی که انسان در وسوسه و حراست زندگی بکنه هر چیزی این مریض دست گرفت دست نگیریم و نمیدونم تو خونه حبسش بکنیم و زندونیش بکنیم و کسی به عیادتش نره کنارش نشینه کنارش نماز نخونه این کارا حرامه بلکه بالعکس رسول الله صلی الله علیه وسلم لا رقیه الا من حمت نوعی یعنی لا رقیه انفه رقیه نافعتر و رقیه سودمنتر از رقیه کردن برای چش زخم و تب نیست آن فلان از تب میاره بهترین درمانش رقیه کردنه رقیه کن. خب چه وقت تو میتونی شخص رقیه بکنی؟ بری پیشش بکنی روش نه اینکه کلن هجرانش بکنی و مرده هست اصلا آنفلانزا گرفته مرده کسی حاضر نیست که غسلش بزنه چرا؟ این آنفلانزا گرفته مرده مریضی آنفلانزا واگیر خب مرده نفس نمی کشه خب باید این آنفلانزا این ویروس از سینش بیاد بیرون که تو بگیری که این آنفلانزا مریضیی که از راه تنفس دیگر انتقال پیدا میکنه. اینجا هست که انسان بدونه که خودش بدونه شرک میشه چیزی که وسیله نیست وسیله قرار داده در تیری افتاده در شومی افتاده در اثبات نحسی به مقدرات الهی افتاده در اون چیزی که وسیله نیست وسیله قرار داده نشرک اکبر و شرک اصغر چون حقیقت شرک اصغر اینه که چیزی که سبب نیست ما سبب قرار بدیم تیری تطیور و بدبینی و بدگمانی و بدشومیشون چی بود اون جاهلیت اون می پلک شومی که اند کف دستشون میذارن یا بال پرنده‌ای فوت میکردن اگر این ور خوبه اگه این ورف نحسه پس نری امروز مسافرت نحسه خب چه ربطی داره نحسی این بال پرنده به نحس بودن خوب و خیر بودن ربطی نداره چون این چیزی که وسیله نیست وسیله قرار دادیم در امور زندگیمون شد این کارمون شرک عملهم شرکا شرعوا لهم من الدين ما لم به الله آیا این چنین چیزی در شریعت الهی هست؟ نه نیست یا سبب کونی یا شرعیه یا اینکه شرع گفته که این سبب یا شرعه بهت گفته سببه اگر این کارو بکنید با همسایت با خوبی رفتار بکنی خوبی ببینیم شرعه گفته بهت یا اینکه دلیل از حس داری دلیل از حس چیه؟ آب نمک توش ریختی آب روی فرش ریختم خیس میشه نمیشه نمک توش ریختم شور میشه نمیشه سبب حسیه حالا جن از هم فرار میکنه از آب نمک فرار میکنه آب نمک را گرفته دور داره خونش داره میپاشه. این سبب حسی یا سبب معنوی هیچ کدوم نه معنا داریم حدیث از رسول الله صلی الله علیه و از قرآن داریم روش و نه هم حسی دلیل مدرک داریم روش کی دیده جن رو تو از کجا فهمید جن نمک فرار میکنه فرشاش شور گرفته از بس که نمک پاشیده این همه نمک تو خونی ریخته و آخرش هم میگه جنا نمیزارن که بخوابه خب نمک چکاری کاری بود پس این نمک رفت؟ باب بعدی قال المؤلف رحمه الله باب الجارسو حدثنا صدقت قال أخبرنا سليمان هو ابن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا يتحول پنجه وششمين باب از باب كتاب عدم وفرد من بخاري رحمه الله باب الجار السوء هم سيبهت حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وارجعه إني أعوذ بك أناهم برنبار اللهم به من جار السوء أزهم صيابت في دار المقام درون سراية جاودانة سراية جاودانة سراية جاودانة كو كجاس؟ بهشت فإن جار الدنيا يتحول كأسي كذري الدنيا أزهم صيامات الدنيا توش عوض میشه در روایت های دیگه اومده فین نجار البادیه يتحول عن همسوی که در بادیه با زندگی میکنه در صحرا و در روستا و در روایت فین نجار المسافر اذا شاء يزايل زایل شاید هم باشه اون همسایه ت سفر تمون بشه اون همسایگی از بین میره تو از دنیا بری همسایگی ت از بین میره این دنیا رفتنیه غصه همسایه بد رو دنیا نخور یک از پیام های این حدیث. و سيه همسایه بعد در این دنیا نخور و آخرت رو داشته باش اونجا همسایه کی باشی اونجا در جوار کی باشی اونجا مهمه هم مغمت رو کجا بذار بهشت در اونجا هم جوار کی باشی هم جوار رسول الله صلی الله علیه و سلم یا هم جوار ابو جهل و فرعون اونجا با کی حشر میشی اونجا رفیق کی هستی الله جل و علا در قرآن میگه الی احلنا السخانه بهشتیان الی احلنا دار المقامه من فضله وقالت لي در بعض از سروق این مده اومده اللهم اني اعوذ بك من جراث سوء في دار المقامه جوی جاودانه الذي احلن دار المقامه من فضله فضل الالهي لا فاضی در مقابل اعمال ما اعمال ما, ما رو وارد بهش نمیکنه فضل الالهی که ما رو وارد بهش میکنه لا يمسن فيها نسب ولا يمسن فيها لو اونجا اس که دیگه خسته نمیشه دلتنگ نمیشه اونجا سرای سعادته اونجا بهشت جاودانه سرای سعادت، اما این دنیا سرای امتحانه. والله خلقنا الانسان فی کبد، هر کسی یک ابتلای امتحانی میشه. یکسی کسی با همسایه بعد، یک کسی با همسری بعد، یک کسی با فرزندی بعد، روح علیه السلام، الله بهش فرزندی بد میده. لوط علیه السلام همسر بدی الله نصیبش میکنه. امتحانه. قرار نیست در این دنیا زندگی زندگی فرشتگان داشته باشیم. نه این سرا سرای ابتلاس امتحانه. و در مقابل امتحانات الهی بغض ما صبور باشیم و از الله و به الله پناه ببریم خصوصا انسان دیدش وسیع کنه یعنی دیدشو بازو بکنه هم مش فقط این دنیا نباشه درسته از الله به الله پناه بردی از همسایه بد گفتی بار الله پناه میبرم از این همسایه به خودت میسپارم این همسایه از بس که شب رو بدی میبینی ولی که در دعایت فراموش نکن آخرت عاقبتتت مقصود در دعاهات فقط این دنیا نباشه به اونجا فکر بزن که اونجا رفیقت کی هست اینو رسول الله صلی الله علیه و سلم در دل ما داره میکاره اینکه هموغممون آخرت باشه همیشه به با آخر عاقبتمون فکر بزنیم و وقتی که از الله یه چیزی می‌خوایم به مصلحت آخرتمون نگاه بکنیم نه مصلحت دنیایی بخاطر هم در دعای استخاره وقتی که انسان زواج بکنه میخواد یه چیزی بخره خب انسان شورشو به الله بده اللهم که به بعلمک که به قدراتت فانک تعلم ولا اعلم تو میدانی بار الله ها من نمیدانم بعدش وقتی که میخواهی میگی اگر خوبه فی دینی و دنیای اگر به دین و دنیام و, دنیا و آخرتم خوبه بار الها نصیبم کن اگر بد نصیبم نکن این دعا وقتی یاد میگیره حالا مکث سری ازش غرض شد به وقتش و به جاش خواهد اومد رسول الله صلی الله علیه و در این دعاها بهمون یاد میدن اگر حظ و نصیب دنیوی خودمون به فکر هستیم و اخرتمون که مهمتره رو فراموش نکنیم اللهم انی اعوذ بکا من شر السوء اظهار نیازمندی عبودیت بندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم با اون مقام و شرف به اون وعده هایی که الله بهش داده میگم بار الله به تو پناه میبرم این دلیل چی میده بندگی احساس نیاز به اون بی‌نیاز افتقار به درگاه الهی کمال بندگی بندگیه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این بندگی رو در خودش می‌بینه از باب اولاً من تو باید ببینیم با این همه تقصیراتم ما باید حریص باشیم بر این دعاها و بر یاد گرفتنشون همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم حریص بودن بر خواستن از الله جل شانو. و این گفتم هر چقدر خودتو را محتاج به الله ببینین عبودیت و بندگی بیشتر میشه شرفت و مقامت بالاتر و بزرگتر میشه مسئله سوم پس پیام‌های این حدیث اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلام که پناه میبره با الله هست همسایه بعد از رفیق بعد در سرای جاودانه که آخرت هست حالا یا جهنمش یا بهشش هر دوتا جاودانه ماندگارند کدام یک را تو انتخاب می‌کنی بهشت که در اونجا رستگار بشی یا جهنمش که در اونجا جاودانه بمانی این با خودته الله جل شانه در قرآن میگه یكحشر الذين ظلموا وازواجهم عمر بن خطاب رضی الله عنه بیات وأزواجهم أي أشباههم هر كسبهم كيش خودش رفيق ورفيق هم, هم فكر وهم فكر هر كسبه كيش خودش مخايك هم كي واشي وحشر الذين ظلموا وها زواجهم مخايك فرعون مخايك تباهكار ظالم الله صلى الله عليه وسلم يرانش قال أي أشباههم قال صاحب الربا مع صاحب الربا و اصحاب الزنا من اصحاب الزنا و اصحاب الخمر من اصحاب الخمر یعنی اختی که الله در اونجا حش میکنه میگه گروه گروه وارد جهنمشون بکنی میگه هر گروهی هم با هم کیشان خودشون خارا یک دسته زناکاران یک دسته غیبت کنندگان یک دسته دروغ گویان یک دسته مبتدعین و گمراهان یک دسته کفار و مشرکین یک دسته یک کسی هست که مستحق تمامی این گروه ها هست هم غیبت کاران هم زناکاران هم مشروبکاران الله جل شانو در قرآن میگه و اذا النفوس زوجت و اذا زوج زوجت اي كل صاحب عمل شکله و نظیره هر کسی با هم کیش خودش در اون دنیا حش میشه متقی با متقی تبهکار با تبهکار تو هستی که برای خودت کدوم یک انتخاب میکنی رسول الله صلی الله علیه و سلام که پناه بردن به الله از این که در اون روزی که گروه گروه دست دسته اصحاب گناه حش میشن جز اونها باشه. و ایده نفوس و زهو بجن بارالله پناه میبرم از رفیق بعد، از همسایه بعد، از همکیش بعد که با اونها حش بشم در روز آخرت رفیق بدی داشته باشن بارالله پناه میبرم وقتی که پناه میبره به الله در اون دنیا پس از باب اولا این دنیا هم شامل میشه الله هم رفقای بد رو از این دنیا ازش دور میکنه لازمت شد وقتی که به الله غنوه بودی از رفقای بعد در آخرت از باب اول این دنیا هم شامل میشه الله رفقای بدم از جلوت در این دنیا از بین میبره تا در اون دنیا با رفقای بعد هاش نشی رفقای صالح با صالح این از باب گوجزت میگم بازم خواهد اومد خیلی از گناه ها هست معصیت ها هست مادرش یا ما دیدمون بهش ناچیزه کوچیکه و تزنی وزناها النظر هم قبول داریم درسته چش زنا میکنه زنا نگاه نمحرم العین و تزدیم و نهان همه قبول داریم زنا یه چشم دیدن نگاه نمحرم شخصی موبایل لحظش نگاه نامحرم میکنه بیرون میره تو کچه بازار نگاه نامحرم میکنه چشمش سیر نیست دلش سیر نیست میخواد لذت ببره از این نعمت میخواد خوش باشه میخواد براندازی بکنه اون نامحرم با اون چشمش غافل از این که این چشم روز قیامت میاد گواه و قال لجلودهم لما شهدتم عنا قال انطقا الله الذي انتق شيء الله به نخش در میاره همون کسی که زبانت رو به نقط در ورد منم به نقط در وردده چش میده غافل از اینکه اون روز اون کسی که با چشمش خطا کرده زنا کرده باقی خش میشه با هم کیشان خودش از اونهایی هایی که با چشم خودشون زنا کردن نگاه فیلم های مستهجن کردن غافل از اینکه اون لحظه ای که مرتکب این فعل بود الله او را شرم از اللهم نداشت الله به کی میگه که مرا نمیبینه به ابو جهل الم یعلم بان الله یرا وقتی که ظلمی کرد به رسول الله صلی الله علیه و سلم ار الذي الی عبدا اذا صلی و کسی که مانع از نماز میشد نمیزاش که رسول نماز بخنه با اون ظلم و تباکاریش الله چی بهش گفت الم یعلم بان الله یرا نمیدونه که الله می بینه؟ ای مؤمنی که تو اینکه خطا انجام میدی چرا غافلی از اینکه الله نظری بهت داره تو را میبینه لیسا کمثله شيء و هو السمیع البصیر بصیره از اون بالا تو میبینه مراقبه اعمالته غافل بودی تو مثل ابو جهل بودی بدرفیقی کی باشی با این کارت در غفلت از دیدن الله بهت هم کی شدی هم ابو جهل یعلم بان الله یا نمیدونه که الله او را میبینه خب اینا هست که انسان باید متوجهش باشه یعنی انسان باید مد نظرش باشه حالا بحث این مسائل باید با سر از این بشه چون گفتم انسان وقتی که به آخر عاقبتش به آخرتش فکر نمیزنه پاش میلغزه اگر به آخر عاقبتش فکر بزنه پاش نمیلغزه این لغزشه از نادانی از جهله از جهل و جهالت ماها هست پس انسان باید بیاد داشته باشه که به هم همجواری خودش انتخاب بکنه همجواری خودش در آخرت انتخاب بکنه رسول الله صلی الله علیه و سلام در حدیث دیگر میگه المرء مع حب که شخص همراه محبوب خودشه هر کسی تو دوست داری با اون ال مر مع ولی خب این به ادعا نیست به عمله الا جالبش اینجا همین روایت در حدیث انس بن رضی الله عنه میگه که من سوالی می‌پرسه بعد رسول اللہ صلی الله جوابش می‌ده میگه انت ام من أنت مع من احببت تهمراه كسي دهوز اخرهت كي ورا دوستاري قال انس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من احب مقال شيء قد خوش حاله ما نكرد مثلين حديث كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمو ان شخص همراه كسي كي ورا دوستاره كي رو دوستاري ميخاي با كي باشي ده روزه قيامت تشش چرانها مشروخران رباخران دزدان دوزدان بيصري وكي أناس. أناس رضي الله عنه ف فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وارجو ان اكون مع رسول الله صلى الله عليه و ابو بكر وعمر و, و دوست دارم با اینها باشم شما دوست دارید کی باشید خودت انتخاب میکنی خودت انتخاب میکنی که کی رو دوست داشته باشی و با اون کسی که دوست داری با اون حشر بشی اگر لیاقت شرف صحبتش رو داشته باشی همجوارش رو داشته باشی این لیاقت شاط أززت بشبيدي بخاطر همين رسول الله الله الله من يعوذ بك من جار السوء أسام جوار الله بينهم يقول شاط إن بده رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله. وسلم يفirma الله جل وعلا ذروز القيامة ميجويات حديث خوسيه بس مسلمة رسول الله الله عليه وسلم يفirma أن الحدثة أبو الله عنه اللهم اغفر له إن الله يقول يوم القيامة الله ذروز القيامة ميجويات أين المتحابون بجلالي اونها يكي محبت هم ديگر رو داشتن به الله متحابون بجلالي اليوم اضلهم في ظلي امروز هست كه در زیر خرم خودم در حديث ديگه اومده كه اين عرش في ظل العرش من در روايات ديگه يوم لا ظل إلا ظل يعني روزي كه نيس إلا الا سايي من قرار دادم سايه عرش متكلمين اين حديث را قبول ندارن چون ميگن كه لازمه سایه بودن جس بودن و چون این نسبت سایه اومده به الله به الاخر ما اوناییه کنید یک جا هست شناخت خیلی از مسائل اعتقادی فهم احادیث را بهمون به راحت میکنه ما اون چیزی که به الله نسبت داده میشه دو نوع داریم یک نسبت خارجی داریم یک نسبت داخلی داریم یعنی نسبتی که دا اون چیز از خود شخصه به خود چیز به خود اون شخص برمیگرده به یک اعتبار و یک اعتبار دیگر اون چیزی که اون چیز در بیرون و خارج از او واقع شده مثلا و نفخت و فیهم روحی هم آدم و هم عیسی علیه السلام الله اون روحی که فرستاد که با اون زنده بشن به خودش نسبت میده میگه بار اون روح من زنده شدن نفخت و فیهم این روحی این روحی ایا زمینی که برمیگرده به الله آیا این نسبت داخلی یعنی چیزی از خود الله جسمی از خود الله حل شده در آدم و عیسی فقط در آدم و عیسی حل شده بقیه ازش محرومن یا بقیه هم شاید این چیز باشد یا حلولیت یا اتحاد دوتا از ایناست هر دوتا دو, دو فرقه گمراه یا این که نه روحی از نزد الله بود که در اینها دمیده شد یعنی روح یک جسم خارجیه که در این دوتا شخص دمیده شدن و اشخاص دیگه هم طور اینجا فقط از باب شرف شده که الله به خودش نسبت داده. روحی از طرف من خاص اینها من فرست دادم. این دوتا روحا روحایه که تفاوت دارم با دیگر ها به دستور من علال خصوص بوده این دو نفر. شکی درش نیست که این دومیه درسته نه اون اولی. چرا؟ این نسبت روح نسبت شرفه. نه نسبت اثبات یک عضو یا قسمتی از عضوی یا به شخص. چند تا دلیل میریم یک از قرآن فرموده الله جل و علا الله و سقیه شطوری که الله برای قوم سمود فرستاد الله میگه این شطور شطور منه ناقت الله شطور الله آیا الله شطور داره؟ محتاج شطوره؟ این نسبت خلقی و نسبت وصف به الله نسبت خلق از مخلوقات به الله یا نسبت وصف از اوصافش نسبت مخلوقی به الله شطوری از سوی الله چرا الله به خودش نسبت داد؟ چون معجزه بود برای تایید صالح درست برای قومش این نسبت چیه شرف نسبت روحم نسبت شرفه چرا نسبت شرفه دو روح در انسان دم نمیشه بعد به اندام مرگ از ما کشیده میشه از بدن ما کشیده میشه هم دلیل از قرآن میانیم هم دلیل از سنت که یه شخص نگا که من حدیث قبول ندارم الله درباره فرعون نمیگه الیوم ننجی که به بدنت گفته نگفته فرعون رو با بدنش نجات دادی بدنش نجات خب جه دیگه در قرآن میگه فرعون و آلش شب روز عرضه بر جهنم میشن روح فرعون کجا عذاب میبینه بدنش که نجاتی روح چی شد در جهنم عذاب میبینه آیا این روحی که عذاب میبینه روح الله که در فرعون بود معاذ کفره فرعونو نگیریم انسان مؤمن حدیث برابن نعازب در مسلم و احمد و سنن نبی داود صحیح امازه وقتی که روح انسان مؤمن کشیده میشه که انما یقطر الماء فی الثقاح هم چون آبی که از قوزه میچکه و روح شخص کافر و فاجر همچون پنبه خیسی که از لابلای خار کشیده میشه این روح تیکه تیکه میشه و اون روح راحت جدا میشه این روح خداست که تیکه تیکه میشه بعد کفن میشه بعد بالا میره بعد دوباره به قبر میگرده منکر و سوال میپرسن این روح خداست یا روح مخلوقه الان اضافه مخلوق به الله شد یا اضافه وصف الله صفه مخلوقه این روح که شرف یافته در این انسان دمیده شده دوباره به قبل به اون جسد برمیگرده باطرا همین که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما ارواح المؤمنین کطیر یعلق من شجر الجنه ارواح المؤمنین در بهش از های بهشتی میخورن الله که در بهش از میوه میخوره الله که سماده محتاج غذا نیست ارواح کدام ارواح اروح مخلوق پس اضافه این روح به الله اضافه چی شد اضافه شرف شده طب اینجا بر برمیگردیم این حدیث اینجا <وزیزم> این سایه سایه الهی یا سایه مخلوق سایه مخلوق این سایه مخلوق سایه چیه؟ است با توجه به حدیث دیگه سایه عرش پس این نسبت مخلوق به خالق نسبت وصف به خالق و در سنان ترمیزی اومده خلاوم وجه شاهدش حالا ما یک قسمتشو عقدیشو بیان کردیم الخبر اون که مهمه که الله جل وعلا در روایت دیگر میگه المتحابون فی جلاله لهم منابر من نور لهم منابر من نور غض منبين وشاده الله اك. این فزیلت محبت في الله. اللهم اين بجلالي؟ في الله میگه ا المتحبون بجلالی اونایی که محبت همدیگر رو داشتن ف الله همسایگان و هم جواران خوبی در این دنیا هم صحبت ها و رفیقان خوبی با هم خوب بودن در این دنیا نصح همدیگر رو میکردن کردن دست همدیگر رو می برای طاعت و عبادات برای طلب علم که شریف ترین عبادات دست همدیگر رو می این محبت في الله المتحبون فی جلالی محبتشون لله باشه بخاطر جلال و عظمت الهی باشه لهم منابر من از عظمت الله ترسیدن اونها منابری از نور دارن که غبته میخورن خورن و شهدا آبا بر اونها قال الله عز وجل المتحبون في جلالی لهم منابر من نور اونهای که فالله لله هم دیگر رو دوسترن محبتشون لله منبرهای از نور دارن که غبته میخورن خورن با اونها پیانبران و شهدهای، یعنی منزلت والا و بالای در بهش راه داشت. این منزلت را خود انتخاب می که همجوار کی باشی و از الله باید یاری به طلبی که همجوارت انسان های صالحی باشد و پناه ببری از همجواران غیر صالح و بد. آخر حدیث رو هم بخونم. قال المؤلف رحمه الله حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن ابن مغراء قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل وجاره وأخاه وأباه هشتاره حديث حدیث حدیث موسی رضي الله عنه کمی یاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودن لا تقوم السع قیامت برپا نمیشه از دشانه های قیامت حتی يقتل الرجل جاره تا اینکه شخص همسایه خودش را به قط برسونه و اخاه و اباه و برادرش و پدرش خب چرا اینجا این حدیث را در این باب بورد امام بخاری رحمه الله در باب همسایه بعد اینجا حدیث دلالتش در عظمت حق همسایه هست حق همسایه مقترن شده برابر شده یعنی عظمتش با حق برادر و پدر از نشانه های قیامت این که شخص همسایه یعنی جرم و جنایتی سخت یعنی این خیانت به جایی برسه که شخص قصد قتل همسایش بکنه و برادرش بکنه و پدرش این نهایت جرمه گفتیم جرم و گناه درکات داره بد و بدتر داره کشتن بده و بدتر از اون کشتن همسایه کشتن برادر و کشتن پدر کشتن همسایه با کی برابر شده؟ با برادر و با پدر پس شعن همسایه شعن والایی هست شعن بزرگیه که پایمال کردن حقوقش از مظهر فساد و فساد از مظهر فسادیه که که با اون فساد ما مستحق برپاه شدن قیامت میشیم یعنی مستحقی این میشی که قیامت بر ما برپا بشه با این فساد با پایمال کردن حقوق همسایه با فراموش کردن حقوق همسایه سبحانه کنال سبحان الله، کنال بحمده و سلال محمد و علیه محمد.